ژن خودخوا، نوشته‌ی ریچارد داکینز، فصل ششم، چیستیِ ژن؟ ژن خودخواه، نوشتهری ریچارد داکینز فصل ششم چیستی ژن ژن خودخوا چیست؟ این نیست که فقط یک قطعه کوچک از DNA ای باشد. درست همدر که در سوپ اولیه بود همهی نسخه های قطعه خاصی از DNA ای منتشر در سراسر جهان است. اگر ما این اجازه را به خود بدهیم که از ژن‌ها طوری صحبت کنیم که انگار، اهداف آگاهانه ای دارند البته با دادن این اطمینان به خود که هر وقت بخواهیم میتوانیم این زبان خودمانی را به زبان رسمی برگردانیم آن وقت میتوانیم توانیم سوالمان را به این صورت مطرح کنیم که یک ژن خودخواه هدف از چیست؟ در پی این است که تعداد خود را در خزانه ژنی بیشتر کند در اصل این کار را با برنامه ریزی برای بقا و تولید مثل بدنهایی که در آن است انجام می‌دهد. اما در اینجا تأکید ما بر آن است که آن یک وجود منتشر است و همزمان در بدنهای زیادی وجود دارد نکته کلیدی فصل حاضر این است که ژن ممکن است بتواند به های خودش که در بدنهای دیگر قرار دارند کمک کند اگر چنین باشد گرچه این کار به خاطر خودخواهی ژن است، نمود آن به صورت ایسارگری در افراد ملاحظه می شود. زال بودن انسان را در نظر بگیرید؟ در واقع چند ژن وجود دارم که می توانند سفیدی مو شوند، ولی من فقط درباره یکی از آنها صحبت می کنم. این یک ژن مغلوب است، یعنی باید به میزان دو برابر در بدن باشد تا آن فرد زال شود. در هر 20 هزار نفر از ما یک مورد از چنین وضعیتی پیدا می شود. این ژن به میزان یک برابر در حدود یک نفر از هر هفتاد نفر وجود دارد ولی این افراد زال نیستند ژنی مثل ژن سفید مویی چون در افراد زیادی منتشر است بر اساس اصول نظری میتواند با برنامه کردن بتن که در آن است به این صورت که، نسبت به دیگر سفید موها گر باشم به بقای خود در خزانه ژنی کمک کند به دلیل اینکه آنها هم همین ژن را دارند اگر بعضی از بدنها که دارای ژن سفید موی یا این بروند ژن سفید موی در صورتی کاملا خورسند می شود که مرگ آنها ایسارگرانه باشد و باعث شود بدنهای دیگری که شامل این ژنند به زندگی ادامه دهند اگر ژن سفیدمویی بتواند یکی از بدنهایش را وادار کند که بدن ده زال دیگر را نجات دهد آنگاه با افزایش تعداد ژن سفیدمویی در خزانه ژنی مرگ آن سالگر کاملا جبران خواهد شد. آیا ما باید این انتظار را داشته باشیم که زالا نسبت به هم باگذشت باشند؟ در واقعیت جواب احتمالاً منفی است برای اینکه بنا شویم جدا منفی است. باید به طور موقت تصوری را که از جن برمان یک عامل آگاه داشتیم کنار بگذاریم و به زبان رسمی برگردیم گرچه در این حالت اصطلاحات دور و درازترند در اصل ژنهای سفید موی به زندگی ادامه دهند یا به دیگر جنهای سفید کمک برسانند اما اگر به طور اتفاقی ژن سفید باعث شود که بدنهایش نسبت به زال‌های دیگر ایسارگرانه رفتار کنند آن وقت به صورت خودکار و کاملا اتفاقی رو به افسایش می‌گذرد و تعدادش در خزانه ژنی بیشتر می‌شود اما برای اینکه چنین اتفاقی روی دهد این ژن باید دو اثر جداگانه روی بدنهایش داشته باشد علاوه بر ایجاد چهره رنگ پریده که اثر معمول این ژن است باید این تمایل را در آنها ایجاد کند که به صورت گزینشی نسبت به افراد دارای چهره رنگ پریده ایثارگر باشند اگر ژنی با چنین اثر دوگانه ای وجود داشته باشد می میتواند در جمعیت مربوطه بسیار موفق باشد اما همانطور که در فصل سوم تاکید کردم ژنها اثر چند گانه ای دارند بر اساس اصول نظری این امکان هست ژنی پیدا شود که هم برچسب قابل مشاهده از بیرون، مثلا رنگ پوست پریده یا ریش سبز یا هر چیز عجیب دیگر را ایجاد کند و هم متناسب با صاحبان آن ویژگی باشد. چنین چیزی ممکن هست ولی احتمال آن کم است. با همین احتمال که ممکن است ریش سبز، با ناخونی که در گوشت پا فرو می میرود یا هر خصوصیت قابل تشخیص دیگر همراه باشد و تمایل به ریش سبز همانقدر احتمال دارد با ناتوانی در بوی گل فریزیا همراه باشد احتمال اینکه یک ژن خصوص هم فلان برچسب مورد نظر و هم آن نوع مناسب از ایسارگری را ایجاد کند زیاد نیست با وجود این، بر اساس اصول نظری، وجود چیزی که بتوان آن را اثر ایسارگری ریش سبز نامید، غیر ممکن نیست. یک برچسب تصادفی مثل ریش سبز، یکی از راههایی است که آنجایم بتواند نسخه های خودش را در بدنهای دیگر تشخیص دهد. آیا راههای دیگری هم برای این کار وجود دارد؟ یک راه کاملا سر راست دیگر را اکنون شرح میدم. دارنده ژن ایسارگر را فقط ممکن است از روی کارهای ای که میکند بشناسیم ژنی میتواند در خزانه ژنی موفق باشد که چیزی معادله ای بدن اگر ای در نتیجه تلاش برای نجات کسی در آب از خود در حال غرق شدن باشد پر و ای را نجات بده این دلیل موفقیت چنین ژنی است که به احتمال بیش از حد متوسط ای دارای همان ژن ایثارگر برای نجات است. اینکه ای در حال نجات جان کس دیگری مشاهده شود، یک برچسب معادل ریشه سبز است. کمتر از ریشه سبز من در آوردی است اما هنوز چندان پذیرفتنی نیست. آیا باز هم راه های قابل قبول دیگری وجود دارد که با آن جنها نسخه های خود را در افراد دیگر بشناسند پاسخ مثبت هست نشان دادن اینکه در خیشان نزدیک، در درزی یک، احتمال مشترک بودن ژنها بیش از حد متوسط است مشکل نیست. مدت هاست که معلوم شده است همین باید دلیل فراگیر بودن ایسارگری پدر و مادر نسبت به فرزندانشان باشد. چیزی را که ری ای فیشر، جی به سین هالدین و به ویژه دال همیلتون، به پی بردند این بود که همین قضیه در مورد دیگر خویشان نزدیک برادرها و خواهرها خواهرزادهها برادرزادها، عموزادهها خالزادها نیز صدق می کند. اگر یک نفر برای نجات جان ده نفر از افراد نزدیک خانواده خود بمیرد گرچه یک نسخه از ژن ایسارگر نسبت به خویشاوندان از بین رفته است ولی تعداد بیشتری از نسخه های آن جن نجات یافتهاند. تعداد بیشتری کمی مبهم است. خیشان نزدیک هم همینطور. همانطور که همیلتون نشان داد، ما میتوانیم کمی واضح صحبت کنیم. دو مقاله 1964 او در ردیفه با ارزشترین نوشته های رفتارشناسی اجتماعی است که تاکنون منتشر شده. من نمیدارم چرا این مقاله ها تا این حد مورد بیمهری رفتارشناسان قرار گرفتهاند حتی در نمایه دو کتاب درسی اصلی رفتارشناسی کرد و در 1970 چاب اند از اسم او خبری نیست. خوشبختانه اخیرا نشانه از توجه به نظریات او ملاحظه می شود. بیشتر مقاله های همیلتون در زمینه ریاضی است. اما اصول بنیادی آن را بتون موشکافی در ریاضیات به صورت شهودی و به شکل بسیار ساده شده میتوان درک کرد. چیزی که ما میخواهیم به دست آوریم میزان احتمال یا عدم احتمال مشترک بودن یک ژن خاص در دو فرد مثلا دو خواهر است. برای ساده تر شدن فرض میکنیم صحبت از ژنی است که در خزانه ژنی کمیابند. بیشتر مردم در ژن سفید مو با هم شریکند. خواه با هم نسبتی داشته یا نداشته باشند دلیل فراوانی این ژنین است که در طبیعت احتمال زندباندن زال ها کمتر از غیر زال هاست از جمله به این دلیل که آفتاب چشم زالها را میزند و احتمال دیدن شکارگری را که با آنها نزدیک میشود برایشان کم میکند برای ما فراگیر بودن چنین جنهای آشکار خوبی مثل جن زال نبودن در خزانه ژنی جنی چندار مورد توجه نیست ما خواهیم توضیح دهیم موفقیت ژنها به طور خاص در نتیجه گریشان است. بنابراین فرض را بر این می که دست کم در مراحل اولیه این جریان تکاملی این ژنها کمیابند. ولی نکته ای مهم این است که حتی ژنی که در کل یک جمعیت به ندرت یافت میشود، ممکن است در خانواده بسیار مشاهده شود. تعدادی از ژن‌های من در کل جمعیت نادر است، ولی شما هم ژن‌هایی دارید که در کل جمعیت کمیاب است. در واقع احتمال اینکه هر دوی ما دارای ژنهای کمیاب یکسانی باشیم بسیار کم است اما احتمال اینکه خواهر من دارای همان ژن کمیابی باشد که در من است کم نیست و همین اندازه احتمال دارد در ژن کمیابی خواهرتان با شما شریک باشد در این موارد احتمال دقیقاً پنجاه درصد است و توضیح آن مشکل نیست فرض کنید شما یک نسخه از ژن جی دارید باید آن را از پدر یا مادرتان گرفته باشید برای راحتی ما دلالت های ممکن دیگر را که کم بس آمدند اینکه جی حاصل یک جهش جدید باشد اینکه هم پدر و هم مادر شما را داشته باشند یا یکی از والدین شما دو نسخه از آن را داشته باشد کنار می‌گذاریم فرض می‌کنیم پدرتان این ژن را به شما داده است بنابراین باید در هر سلول معمولی بدنش یک نسخه از این ژن جی وجود داشته باشد خوب حالا بیاد بیاورید که وقتی مردی یک اسپرم میسازد نیمی از ژنهای خود را در آن پخش میکند بنابراین به احتمال 50 درصد در آن اسپرمی که خواهر شما را ساخته است ژن جی وجود خواهد داشت از طرف دیگر اگر شما ژن جی را از مادر خود گرفته باشید باز هم به احتمال پنجاه درصد خواهرتان هم این ژن را دریافت کرده است این یعنی اگر شما صد خواهر و برادر داشتید حدوداً پنجاه درصد هر ژن خاص و کمیابی که دارید در بدن هر یک از خواهر یا برادرهای شما وجود دارد شما می توانید همین نوع محاسبه را در مورد هر درجه از که بخواید انجام دهید یک رابطه مهم رابطه بین والدین و فرزند است اگر شما یک نسخه از ژن H داشته باشید، احتمال اینکه هر یک از بچه های شما هم آن را داشته باشند پنجاه درصد است، زیرا H در نیمی از سلولهای جنسی شما هست. و هر بچه‌ای که از یکی از سلولهای جنسی ساخته شود آن را خواهد داشت. اگر شما یک نسخه از ژن F را داشته باشید، احتمال اینکه پدرتان همان را داشته باشد پنجاه درصد است. زیرا شما نیمی از جنهایتان را از او گرفته اید و نیمی را از مادرتان برای راحتی کار از یک شاخص خیشاوندی که احتمال مشترک بودن ژن بین دو نفر خیشاوند را نشان میدهد استفاده میکنیم میزان خیشاوندی بین دو برادر یک دوم است زیرا نیمی از جنهایی که یک برادر دارد در دیگری نیز وجود دارد این یک عدد تقریبی است بسته به اینکه تقسیم کروموزومی چگونه باشد در دو برادر خاص ممکن است جنهایی مشترک کمتر یا بیشتر از این باشد درجه خویشاوندی بین والدین و فرزند همیشه دقیقا یک دوم است انجام این محاسبه هر بار از اول کمی خسته کنند است بنابراین برای درآوردن از میزان خویشاوندی بین دو فرد A و B و پیبردن به یک قاعده تقریبی و شاید در تنظیم نامه یا در تفسیر های ظاهری بین افراد خانواده به دردتان بخورد این قاعده در همه موارد ساده جواب میدهد اما آنجا که ازدواج با مهارم صورت میگیرد و همطور که خواهیم دید در مورد بعضی حشرات درست ازدواج در نمیآید ابتدا همه اجداد مشترک ای و بی را شناسایی کنید برای مثال جد مشترک دو عموزاده پدر بزرگ و مادر بزرگ مشترکان هاست وقتی جد مشترک را پیدا کردید البته از نظر منطقی درست است که همه اجداد او برای A و B هم مشترک باشند اما با آنها کاری نداریم. فقط نزدیکترین جد مشترک را در نظر میگیریم به این ترتیب اموزاده های نسل اول فقط دو جد مشترک دارند اگر بی از نظر نژاد از نسل ای باشد مثلا نوهش باشد آنگاه خود ای همان جد مشترکی میشود شود که ما دنبالش میگردیم بعد از شناختن جد های مشترک ای و بی فاصله های نسلی را به صورت زیر حساب کنید با شروع از A از درخت خانواده بالا بروید تا به آن جد مشترک برسید. بعد از آن جد مشترک به سوی پایین حرکت کنید تا به B برسید. تعداد کل همه پلهایی که در درخت بالا رفتید و بعد پایین برگشتید می شود فاصله نسلی. برای مثال اگر A عموی B باشد فاصله نسلی سه است. جد مشترک پدر A و پدر بزرگ B است. با شروع از A شما باید یک مرحله بالا بروید تا به آن جد مشترک برسید. بعد برای رسیدن به B باید از آن طرف دو نسل پایین بیایید. بنابراین فاصله نسلی می شود دو به اضافه یک مساوی سه. پس از پیدا کردن فاصله نسلی بین A و B از طریق یک جد مشترک خاص، میزان نسبت خویشاوندی را که در آن جد مشترک ایجاد کرده محاسبه کنید. برای این کار باید یک دوم را به اعضای هر پله از فاصله نسلی یک بار در خودش ضر کنید. اگر فاصله نسلی سه باشد باید یک دوم در یک دوم ضرب در یک دوم یا یک دوم به توان سه را بدست آورید. اگر از طریق یک جد مشترک فاصله نسلی جی پله باشد، میزان خیشاوندی از روی آن جد مشترک یک دوم به توان جی می شود. اما این فقط بخشی از میزان خیشاوندی بین A و B است. اگر آنها بیش از یک جد مشترک داشته باشند، ما باید برای هر جد رقمی معادل آن را اضافه کنیم. معمولاً چنین است که از روی هر جد از اجداد مشترک دو نفر حساب کنیم فاصله نسری مثل هم می شود بنابراین بعد از محاسبه میزان خیشابندی بین A و B بر مبنای یکی از اجداد مشترک آنها تنکاری که باید بکنید این است که آن را در تعداد اجداد مشترک ضرب کنید برای مثال های نسل اول دو جد مشترک دارند و فاصله نسری از طریق هر جد که باشد چهار است بنابراین میزان خویشاوندی برابر است با دو ضرب در یک دوم به توان چهار مساوی یک هشتم اگر ای نتیجه بی باشد فاصله نسی سه و تعداد جد مشترک یک انخود بی خواهد بود بنابراین یک ضرب در یک دوم به توان سه مساوی یک هشتم از نظر ژنتیکی عموزادهٔ شما معادل یک نتیجه شماست به طریق شما همان که ممکن است به اموی تان رفته باشید میزان خیشاوندی دو ضرب در یک طبان به مساوی 1 چارم، ممکن است به پدر بزرگ خود میزان خیشاوندی یک ضرب در یک طبان به دو مساوی 1 چارم شواهد داشته باشید. در مورد نسبت دورتر، مثل نتیجه های دو برادر، دو ضرب در یک طبان به توان 8 مساوی 1 بیست و هشتوم. ما به سوی خط سفر احتمال میل می کنیم جایی که هر ژن خاصی که در ای است می با هر فرد اتفاقی دیگری در آن جمعیت تا آن حد مشترک باشد نتیجای دو برادر از نظر ژن ایسارگر نسبت به هم تقریبا مثل هر شخص اتفاقی دیگرند نواهای دو برادر خیشابندی یک سی و دوم دو فقط تا حدی برای هم خواستند و بچه های دو برادر کمی بیشتر از آن یک هشتوم. برادرها و خواهرای تنی و والدین و فرزندان خیلی خواصند. یک دوم و جفت‌های دو قلوی یکسان خیشاوندی مساوی یک هر کدام همان قدر برای آن یکی خاص است که برای شخص خودش. اموها و خاله ها و پدر و ها و برادرزاده ها پدربزرگ ها و نوه ها و خواهر و برادرای ناتنی همه با میزان خویشاوندی یک چهارم چیزی بینابین هستند. حالا ما در موقعیتی قرار داریم که می توانیم خیلی دقیق درباره ژن ایسارگری نسبت به خیشاون صحبت کنیم ژنی که با از بین بردن خود پنج اموزاده را نجات دهد در آن جمعیت تعدادش بیشتر نخواهد شد اما ژنی که پنج برادر یا ده اموزاده را نجات دهد بیشتر می شود حداقل شرط لازم برای موفق بودن یک ژن خودکش ایسارگرین است که بیش از دو همشیر فرزند یا والد یا بیش از چهار همشیر ناتنی یا خاله، امه، امو، دایی، برادرزاده، خواهرزاده، پدر بزرگ، نوه یا بیش از هشت، امو، امه، خاله، زاده و ال آخر را نجات دهد چنین جنی به طور متوسط این گرایش را دارد که در تعداد مناسبیت بدنهای نجات یافته به زندگی ادامه دهد تا مرگ آن فرد ایسارگر جبران شود اگر فردی اطمینان داشته باشد که شخص خاصی دو قلوی همسانش است دقیقا همانقدر که به فکر رفاه خود است به او فکر می کند. هر ژن ایسارگری نسبت به جفت و همسان محکوم است به اینکه در هر دو بدن باشد بنابراین اگر یکی قهرمانانه در راه نجات جان آن دیگری بمیرد آن ژن به زندگی ادامه خواهد داد آرمادیلوهای نه خط به صورت چهار قلوهای همسان به دنیا آیند. تا که من می‌دانم از هیچ رفتار قهرمانانه و فداکارانه در مورد های کوچک صحبت نکردند اما انتظار نوعی از خودگذشتگی شدید را در آنها باید داشت و بد نیست وقتی کسی به آمریکای جنوبی می سری سریبان ها بزند حالا می بینیم که مراقبت پدر و مادر حالت خاصی از ایسارگری نسبت به خیشاوند است. از نظر علم وراست، یک فرد بالر باید همان اندازه مراقبت و توجه را که نسبت به فرزند خود دارد نسبت به برادر نوزاد خود که پدر و مادر را از دست داده نشان دهد. نسبت خیشابندی او با این هر دو کودک دقیقا یکسان و یک دوم است با استفاده از اصطلاحات مربوط به انتخاب ژن میتوان گفت ژنی که در یک خواهر بزرگتر رفتار ایسارگرانه ایجاد می کند باید همان اندازه احتمال پخش شدن داشته باشد که ژن ایسارگر والدین در واقع این یک جور بیش از حد ساده کردن موضوع است که بعدا به دلایل مختلف آن خواهیم پرداخت و در طبیعت هیچ چیز دیگر مثل مراقبت خواهرها یا برادرها به مراقبتی که معمولا پدر و مادرها از فرزندان میکنند شبیه نیست اما نکته مورد نظرم در اینجا این است که از نظر ژنی بین رابطه والدین فرزند و برادر خواهر چیزی وجود ندارد که را در تقابل با هم قرار دهد این واقعیت که والدین جنهاشان را به بچه منتقل می کنند ولی خواهرها ژنی به هم منتقل نمیکنند در اینجا بیربت است زیرا خواهرها هر دو رونوشت یکسانی از ژنهای یکسانی را از پدر و مادر یکسانی دریافت میکنند ها اصطلاح انتخاب خیشاوند را بهکار میبرند تا این نوع از انتخاب طبیعی را انتخاب گروه تفاوت بقا در گروهها و انتخاب فرد تفاوت بقا در افراد متمایز کنند انتخاب خیشاوند ایسارگری درون خانواده را توجیه میکند هرچه نسبت نزدیکتر باشد این انتخاب با شدت بیشتر صورت میگیرد این اصطلاح هیچ اشکالی ندارد اما متاسفانه به خاطر بعضی کاربردهای نابجا و زیاد از آن باید از خیرش گذشت چون احتمالاً زیستشناسان آینده را گیج و سردرگم میکند ای اوی ویلسون در کتاب خود زیستشناسی اجتماعی ترکیب جدید انتخاب خیشاوند را مورد خاصی از انتخاب گروه به حساب میآورد او در نموداری به روشنی نشان میدهد که آن را سطحی میانی بین انتخاب فرد و انتخاب گروه به مفهوم متداول آن در نظر گرفته. با آن مفهومی که من در فصل یکم به کار بردم. اما انتخاب گروه حتی طبق تعریف گود ویلسون، به معنی تفاوت بقا در گروههای افراد است. بیشک خانواده یک نوع گروه خاص است. اما کل مطلب همیلتون این است که مرز بین خانواده و غیر خانواده چندان سفت و سخت نیست. و بیشتر به بحث احتمالات در ریاضی نزدیک است. این کیوانات باید نسبت به همه اعضای خانواده خود رفتار ایسارگرانه و نسبت به دیگر افراد رفتار خودخانه داشته باشند در نظریه همیلتون جایی ندارد. هیچ مرز قاطعی بین خانواده و غیر خانواده کشتره می شود. ما مجبور نیستیم تعیین کنیم آیا مثلا نست دوم اموزاده را داخل گروه خانواده بگذاریم یا بیرون آن ما فقط برای نسل دوم اموزده انتظار برخورداری از ایسارگری را یک شنزده آن مقداری می‌دانیم که به فرزند یا خواهر یا برادر کسی می رسد. قاطعانه می گفت انتخاب خیشاوند مورد خاصی از انتخاب گروه نیست بلکه نتیجه خاصی است که از انتخاب جنها پیدا می شود. در تعریف بیستان از انتخاب خیشاوند یک اشکال جدی دیگری نیز وجود دارد. او امدا فرزندها را کنار میگذرد آنها را خویشاوند محسوب نمی‌کند. البته او حق دارد هر طور که بخواهد واژه را تعریف کند ولی این تعریف بسیار گمراه کننده است و من امیدوارم ویلسون در ویرایش‌های بعدی کتابش که واقعا کتابی تأثیرگذار است آن را اصلاح کند از نظر ژنی های پدر و مادر و ایسارگری خواهر و برادر دقیقا به دلیل یکسانی پیدا شدهاند در هر عموره به احتمال زیاد ژن ایسارگر در بدن فرد بهرهبر وجود دارد من از خواننده غیر متخصص عذر میخواهم که کمی انتقاد کردم و فورا به مطلب اصلی برگردم